بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند به مهربان نهایت باره کاف ها یا عین صاد این ذکر است از رحمت پروردگارت و به انداشت ذکریه انگامی که پروردگارش را به آهستگی دعا کرد و گفت ای پروردگار من بگمان استخوانم ضعیف شده و پیری بر موهای سر من شده است و من از اجابت نیایش به درگاه تو هرگز محروم ساختن نشدم و من از وابستگانی که از عقب من میمانند بیمناکم و زنم نازای است پس به من از نزد خودت جانیشین عنایت فرما که وارث من و وارث اولاد یعقوب شود و ای پروردگارم او را مورد خوشنودی خیش بگردان گفتیم ای زکریا بگمان تو را به فرزندی بشارت میدهم که نام او یحیی پیش از این برای او هم نامی قرار ندادی زکریا گفت ای پروردگار من چگونه برایم فرزندی خواهد بود در حالی که زنم نازای است و من نیز از پیری پای مانده شده هم. گفت این چنین است پروردگارت گفت این کار بر من آسان است پیشتر از این تو را آفریدم که چیزی نبودی زکریا گفت ای پروردگار من برایم نشانه معین فرما وان گفت نشانه تو این است که سه شب و روز پیاپی پای با مردم سخن نمی زنی در حالی که زبان تو سالم است او به این ترتیب از عبادتگاهش نزد قوم خیش بیرون شد و به اشاره به ایشان گفت که صبح و شام تسبیح بگوید به وی ندا آمد که ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر و ما به او در کودکی حکمت دادیم و به او مرحمتی از جانب خود ارزانی کردیم و نیز پاکیزگی و او پرهیزگار بود و او با پدر و مادر خود نیکوکار بود و ستمگر و سرکش نبود سلام بر او در روزی که تولد شد روزی که می میرد و روزی که باز زنده برانگیخته می شود باری در این کتاب از مریم یاد کن هنگامی که از خانواده خیش خود را به ناحیه به کنار کشید و در برابر ایشان پرده گرفت در این حال به سوی او روح خود را فرستادیم که درست مانند بر بروی ظاهر شد مریم گفت از تو بر من پناه می برم اگر از خدا می ترسی با من نزدیک مشو فرشته گفت من فرستاده پروردگار تو ام تا به تو پسر پاکیزه ببخشم مریم گفت از کجا می توانم پسری داشته باشم در حالی که بشری با من تماس نگرفته و زنی بدکاره نبوده ام فرشته گفت این چنین است پروردگارت گفت و این کار بر من آسان است تا ما او را نشانه برای مردم گردانیم و مرحمت از جانب خیش امری بود فیصله شده سرانجام مریم به با او باردار شد و با این کودکی که در شکم داشت به جای دو دستی رفت درد زائیدن او را به زیر درخت خرمای کشاند و از شدت نارامی گفت ای کاش پیش از این می مردم و کاملا فراموش می شدم آوازدهنده از زیر پای او ندا کرد اندوهگین مباش، پروردگارت زیر پای تو چشمه گوارای را جاری ساخته است این تنه درخت خرما را با سوی خود تکاندی بر تو خورمای تازه پخته می ریزد بخور و بنوش و چشم خود را به این کودک روشن ساز اگر کسی از مردم را دیدی بگو من برای خدای رحمان روزه گرفتم پس امروز با هیچ آدمی سخن نخواهم زد آخرالامر کودکش را به دوش کشید و به پیش قوم خدا ورد. گفتند ای مریم براستی که عمل تعجب آوری انجام دادی. ای خواهر حارون نه پدرت مرد بدی بود و نه هم مادرت زن بدکارا بود. از این رو مریم به سوی کودک اشاره کرد. آنها گفتند ما با کودکی که در گهواره است چی تا سخن زنیم؟ کودک به سخن آمده گفت من بیگمان بنده خداام خداوند به من کتاب داده و مرا پیام برگردانیده است و مرا در هر جایی که باشم پر برکت ساخته است و تا وقتی که زنده مرا به نماز و زکات امر فرموده است مرا به مادرم مهربان ساخته و مرا سرکش بدبخت نگردانیده است سلام بر من در روزی که پیدا شدم روزی که می میرم و روزی که باز زنده برانگیخته می شوم. این است سرگذشت عیسی پسر مریم سخن حقی که در آن جدال می کند برای خدا شایسته نبوده است که فرزندی بگیرد پاکی از آن اوست هرگاه چیزی را بخواهد که انجام یابد صرف به آن می گوید شو پس می شوید. بگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرستی این است راه راست ولی فرقه ها در میان خیش اختلاف ورزیدن پس وای بر کافران از روبرو شدن به این روز بس بزرگ چی شنوایی به ایشان و چی بینایی می می‌دهد روزی که به حضور ما می و ولی ستمگاران امروز در گمراهی آشکارند و ایشان را از روز حسرت باری که در آن همه چیز فیصله می شود ایشان در غفلتند و ایمان نمی آره. این ما هستیم که زمین و هرچی را در آن است به ارث می بریم و به سوی ما بازگردانیده می شود در این کتاب از ابراهیم یاد کن بگمان او نهایت صادق و پیامبر بود انگامی که به پدرش گفت ای پدر من چرا چیزی را که نمی شنود و می بیند و هیچ نیازی را از تو برطرف نمی سازد پرستش میکنی ای پدر من حقا که به من از آن علم آمده است که به تو نیامده است پس مرا پیروی کن تا تو را برای راست رهنمون شون ای پدر من شیطان را پرستش مکن بیگمان شیطان در برابر خدای رحمان نهایت سرکش است ای پدر من میترسم ما با دا از جانب خدای رحمان به تو برسد و با شیطان پیوست شوی پدر گفت ای ابراهیم آیا تو از معبودان من روی برتافته اگر از این کار خودداری نکنی تو را سنگسار خواهم کرد و کنون از من تا مدت درازی دور شو ابراهیم گفت سلام بر تو بزودی برایت از پروردگارم طلب آمرزش میکنم بیگمان او به من بسیار مهربان است من از شما و آنچه چه با جز خدا نیایش می کنید دوری می جویم و به پروردگار خیش نیایش می کنم امید است به برکت نیایش پروردگار خیش بدبخت نشود چون ابراهیم از ایشان و آنچه چه با جز خدا یکتا می پرستیدن دوری جست به او اسحاق و یعقوب را ارزانی کردیم و هر یک را پیامبر ساختیم و از رحمت خیش به ایشان موهبت کردیم و برای ایشان نیکنامی بلند مرتبه را قرار دادیم و در این کتاب از موسا یاد کن بیگمان او مخلص بود و او رسول و نبی بود و ما به او از جانب راست کوه تور ندا کردیم و او را بر راز و نیاز خیش قرب بخشیدیم و به رحمت خیش به او برادرش هارون را که پیانبر بود همکاری بخشیدیم در این کتاب از اسماعیل یاد کن بیگمان او به وعده خود صادق بود و رسول و نبی بود او خانواده خود را به نماز و زکات توسیمه کرد و در نظر پروردگارش پسندیده بود در این کتاب از ادریس یاد کن بگمان او بسیار صادق بود و پیامبر بود و ما او را به مقام بلند بالا بردیم اینها ها بودند که خداوند بر ایشان نعمت داده بود از پیامبران از نسل آدم و از آنانی که با نوح در کشتی برداشتیم و از نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنها را هدایت نمودیم و برگزیدیم چون آیات خدای رحمان بر ایشان خوانده می شد سجده کنان و گیریان به زمین می افتادند اما از پی ایشان آمدند که نماز را زاعی کردند و از شهوات پیروی نمودند و به زودی جزای گمراهی خیش را خواهند دید جز کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و اعمل صالح انجام دادند پس چنین کسانی داخل بهشت می شوند و بر ایشان هرگز ستمی نمی شود باغهای جاودانی که خدای رحمان به بندگان خود در غیب وعده کرده است حقاک وعده او ایفا شده نیست در آنجا هرگز سخن بیوهوده را نمی شنوند جز سلام را و در آن به ایشان و روزیشان صبح و شام آماده است این همان بهشت است که ما آن را به کسانی از بندگان خود میراس میگذاریم که پرهیزگار باشند رشتگان می گویند ما جز به حکم پروردگاری تو فرود نمی آییم آنچه پیش و روی ماست آنچه پشت سر ماست و آنچه در بین این دو است همه از آن اوست و پروردگاری تو فرابشکار نیست پروردگار آسمانها و زمین و آنچه بین آن هاست. پس او را پرستش کن و در بندگی او شکیبا باش آیا برای او هم تایس سراغ داری؟ انسان می گوید آیا بعد از آنکه بمیرم باز دوباره زندگردانیده خواهم شد؟ آیا انسان به خاطر نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که او هیچ چیز نبود؟ به پروردگارت قسم که ایشان را گرد آوریم و شیاطین را نیز و باز همه را در حالی که به زانون در افتاده اند پیرامون دوزخ حاضر می سازیم. سپس از هر فرقه های را که در برابر خدای رحمان سخت سرانه تر سرکشی می کردن بیرون می کشی. و باز ما یقینند کسانی را که برای سوختن در آتش سزاورترند خوب می شناسیم هیچ کس از شما نیست مگر اینکه بر آن گذر دوزخ وارد می شود نزد پروردگارت امریست مقرر. سپس پرهیزگاران را نجات داده و ستمگاران را در آن به در افتاده می گذارید. و چون آیات روشن ما به ایشان خوانده می شود کافران به مسلمانان می گویند کدام یک از دو گروه ما و شما از نظر مقام برتر و از نظر مجالس و تشکیل محذرهای مجلل بهتر است یا نمی دانند چی تعداد بیشمار از مردمی را پیش از ایشان نابود کردیم که ساز و برگ بهتر و ظاهر آراسته تر داشتند. بگو کسی که در گمراهیست خدای رحمان به او محلت دراز می دهد. تا چون جزایی را که به ایشان و عدد شده ببینند عذاب یا قیامت در این حال می داند که کیست که مقام بدتری دارد و کیلش کری ناتوانتری؟ و خداوند به هدایت رهیابان می افزاید و باقیات و صالحات نزد پروردگارت هم ثوابی بهتری دارد و هم آقیبت ارزشمنتری آیا کسی را دیدی که از آیات ما انکار ورزید و گفت یقینا در آن جهان نیز به من دارایی و اولاد داده می شود؟ آیا او به اسرار غیب آگاه شده یا از نزد خدای رحمان عهد گرفته است؟ نه چنان است که او می گوید زودی گفته هایش را می نویسیم و عذاب او را مداوم می سازیم و همه چیزهایی را که گفته از وی به میراث می بریم و خودش نزد ما به تنهایی می آید مشرکان جز خدا معبودانی گرفتند تا برایشان مایه مایع عزت باشند نهچنان است که ایشان می پندارند زودی از پرستش آنها بیزاری می جویند و بر ضد ایشان قرار می گیرند آیا ندیدی که ما شیطانها را بر کافران گماشتیم تا ایشان را شدیدن تحریک کنن؟ پس در مورد ایشان شتاب مکن ما اعمال ایشان را دقیقا بررسی میکنیم روزی که پرهیزگاران را همچون وفتی به سوی خدای رحمان گرد آوریم و گناهکاران را با تشنکامی به سوی آتش دوزخ برانیم در آن روز هیچ کسی شفاعت کردن نمیتواند. مگر کسی که از جانب خدای رحمان پیمان گرفته باشد گفتند خدای رحمان فرزند گرفته است واقعا سخن زشتی به زبان آوردید نزدیک است که آسمانها از سبب آن سخن ایشان متلاشی گردن زمین شگافته شود و کوها در دم فروغلتد از شومی اینکه برای خدای رحمان فرزندی میگیرند در حالی که برای خدای رحمان سزاوار نیست تا فرزندی بگیرد هیچ کس در آسمانها و زمین نیست جز اینکه به حیث بنده نزد خدای رحمان می آید خداوند همه اینها را حساب کرده و آنها را دقیقا شمرده است و همه ایشان نزد او در روز قیامت به تنهایی می آیند بر کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند خدای رحمان محبت ایشان را در دلها قرار می دهد بگمان ما قرآن را به زبان تو آسان گردانیدیم تا با آن پرهیزگاران را بشارت دیه و وسط زندگان را برحضر سازی و چی تعداد به حساب از اقوام بی ایمان و گنهکار را پیش از ایشان حلاک کردیم؟ آیا از ایشان احد را حالا می‌بینی یا آیا حتی صدای از ایشان میشینوی؟